الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والسيد المرسلين وآله وصحبه أجمعين أما بعد مقرر مبارئنبود شابهي يبشانبه در خدمت شما باشين بصيرة مصطفى صلى الله عليه وسلم حقيقة بحب التخصيقية سفر نتونسين بحث وإدامة بديم لك ان شاب در خدمت شما باشين با همون ده دقیقه قرار داده که با شما باستیم بیشتر از ده دقیقه سعی می که نباشه صحبتمون هرچند که زندگی نامه محمد صلی الله علیه وسلم نیاز به فداکاری داره نیاز به این داره که ما بیشتر از وقت خودمون به این شخصیت بزرگوار بدیم به این شخصیت شخصیتی که بهترین انبیار برگزیده خداوند متعاله باید بهش اهمیت بریم الگوی ما و خداوند در قرآن به ما دستو دادند اند و فرموده که لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه برای شما در رسول الله صلی الله عليه و سلم الگوی نیکی است در اخلاقش در رفتارش در رفتارش با خداوند رفتارش با مردم به خاطر همینه که خداوند در قران چنین میگوید از ایشان و انک لعلا خلق عظیم و خلق عظیم شما بر اخلاق والا و ورسته بر قدار هستی اخلاقت خیلی بزرگه اخلاقت خیلی بزرگه بزرگه واقعا بزرگه سیرت شما بخواهیم خوند میبینیم که خواهیم دید که چقدر این شخصیت بزرگ بوده و چه کارهایی کرده برای اینکه دین خودمان را به ما برسونه هم چنین چنین که كان خلوق و آیش هم چینین می که کان خلوق قرآن، کان صلی الله عليه وسلم خلوق قرآن، اخلاق رسول قرآن بود. یعنی چی اخلاقش قرآن بود؟ قرآن چیه؟ چطوره؟ یعنی وصفش آیا در قرآن اومده بحث اخلاقش قرآن بود، یعنی این که یک ویژگی خاصی در اخلاقش بود، که این ویژگی برمیگرده در بر رستار و اخلاق و برخوردش با خداوند خداوند در قرآن از ما بندگی میخواد عبودیت میخواد میخواد که ما بنده باشیم اقرار به بندگی بکنیم به نماز بیاییم. اگر اخلاق رسول الله قرآنه یعنی اینکه که رسول الله صلی الله علیه وسلم تونسته حق بندگی و حق عبودیت را به بیاره این اخلاق بلاست این بزرگترین اخلاقات که انسان بتونه اخلاقش را با خداوند خوب بکنه بله هیچ کس میتونه مثل رسول الله صلی الله علیه و سلم شب را نصفه یا ون قسم منه قلیلاً شب یا نصف شب. یعنی شب به تمامی یا نصف شب یا ون قسم منه قلیاً کمی کمتر از نصف شب. در نظر بگیرید دوازده ساعت شب شش ساعت انسان فقط به قوی است. می‌بینن دنبالش میگردن می‌بینن در مسجد پاهاش برام کرده فائزداده سوره بقره آن انعام اعراف را خونده در اون شب پاهاش قرمز مز کرده از, از ایستادن در جلو خداوند یا رسول الله سوال می یا رسول الله خداوند که گناه ما قبل تو ما بعد زخشیده چرا اینقدر تو عذاب می‌دی؟ با رسول الله صلی الله علیه و آله شکور آیا بنده شاکر نباشم پس می‌خوان به ما درس شکوه‌گاری را بدن اما ما در هفته قبل گفتیم رسول الله صلی الله علیه و سلم دوشنبه را رو روزه میگرفتن برای چی؟ برای اینکه در اون روز به دنیا آمدند، برای اینکه شبگذار و سپاسگزار خداوند باشند به ما یاد میدن که این شخصیت باید چگونه در ازایش در مقابلش شبگذاری بکنیم. دوشنبه سنته که روزه بگیریم خاطر اینکه همون گفتم و همون که گفتم در اون روز رسول الله صلی الله علیه و سلم به دنیا اومدان نه اینکه یک سال بگذره دوازدهم ربیع الاول بیم سیرتشو بخونیم بلاغت عربی هیچ کس حالیش نیست این اکرام نبوت نیست این تکریم قرآن نیست این تکریم وحی نیست این تکریم رسالت نیست تکریم و اکرام این قرآن این وحی و این رسالت و این رسول و این خاتم النبی اینه که سیرتشو با دقت بخونی درس ازش بگیریم. الگو قرارش بدیم خب گفتیم رسول الله صلی الله علیه وسلم الان دو شنبه به دنیا آمدن در دوازه هم اول هرچند که در تاریخ تولدش اختلاف بعضیا گفتن ایب ده گفتن دهم لیکن روایت ابن در دوازه هم اول صحیح روایات قبل از اینکه ما بپردازیم به بحث سیرتش از کجا شروع شد بپردازیم به نسبش رسول الله صلی الله علیه و سلم محمد فرزند عبدالله الله فرزند عبدالمطلب فرزند هاشم فرزند عبدمناف فرزند حسین حسین کی بوده حسین یکی از پدر بزرگان رسول الله صلی الله علیه و سلم که میاد یک انجمنی یک دارالندوی را تأسیس میکنه برای اینکه بیان شور و مشورت بکنن و خدمت به حجاج بکنن معروف بودن خانواده رسول الله به خدمت حجاج خدمت به دین خداوند دین ابراهیمی که کعبه رو تأسیس میکنه بعد از اون عبدالمطالب که در بزرگ رسول الله صلی الله علیه و سلم بحث چاه زمزم میاد چاه زمزم خواب میبینن چار شب پی در پی چاه گم شده از ظلمات مردم از گناه مردم ترتیب سبب شده که این چاه خود به خود آبش کم بشه و این چشم کور بشه تا اینکه پدر بزرگ رسول الله صلی الله علیه و سلم خواب می‌بینن خواب می‌بینن که فرشته‌ای میاد دستور بهش میده که برو فلان جا بکن 4 هفته در پی خواب می‌بینن تا اینکه میرن میکنن و آب از اونجا بیرون میاد بعد دعوا میشه بین قریش و بین بنی هاشم در ته این دعوا ها دوباره اون آب خوش میزنه بعد در یک سفری که بودن در یک جایی که بودن میخوابند همهشون از اون خورهش و هاشم آبی نداشتند از تشنگی تا اینکه در حین خوابشون از زیر پاهای عبدالمطلب آب بیرون میاد میدونند که بعد از اونجا میدونند که باید حق آب زمزم حق اشراف بر این آب باید به خانواده و نمادگان عبدالمطلب سپرده بشه خب عبدالمطلب این شخصیت بزرگ این شخصیتی که خداوند انتخابش میکنه برای چاه زمزم و آب زمزم ده تا فرزند داره نظری میکنه که از این ده تا فرزند یکیشونو قربانی بکنه میاد بعد از اینکه ده تا فرزندش کامل میشه عبدالله هم به دنیا میاد در پدر رسول الله صلی الله علیه و سلم میاد بین ده تا فرزندش قوراکشی میکنه در این قوراکشی اسم عبدالله پدر رسول الله صلی الله علیه و سلم بیرون میاد دوست داره فرزند. پدربزرگ فرزندشه و عزیزصری فرزندش دوباره این کار را تکرار میکنه دیگه بازم اسم عبدالله بیرو نمیاد خب چاره ای نیست باید مثل ابراهیم باید فرزندشو ذبح بکنه به خاطر همین که رسول الله صلی الله علیه و آله میفرما من فرزند دو تا زبیشه هستم دو تا ذبح شده خداوند حکم و صادر شده بود یکی اسماعیل و دومی هم پدرش بعد عبد میاد بین ست و شتور و بین فرزندش قورکشی میکنه که یا ستا شطور قربانی بکنه یا فرزندش در اون قورکشی وارد دوم اسم ستا شطور بیرون میاد به جای فرزندش عبدالله ستا شطور قربانی میکنه خب عبدالله بزرگ میشه در این خانواده بزرگ بعد با امینه بنت وهب مادر رسول الله صلی الله علیه و میکنه در سفری که میرن به مدینه در اونجا تخت میکنند بعد از وفاتش رسول الله صلی الله علیه و سلم به دنیا میاد صحیح اینه که بعد از وفات پدرش به دنیا به دنیا اومدن الا میجد کی فآوا یتیم به دنیا اومد وقتی که به دنیا اومد به این آیه قرآن رسول الله صلی الله علیه و سلم پدری نداشتن حالا روایت‌های ضعیف و موضوع و دروغ ولشون بکنیم کسانی که گفتن حیف ده ماهش بود 18 ماهش بود بعد از 10 ماه به آیه قرآن یتیم به دنیا میاد و همونطور که در روایت صحیح اومده دو که فرصت داریم تا اینکه در این قصه امروز مون رو بگند. امن وقتی که حامله میشه، حالا یک های ضعیفی هست که من نمیخوام تکش میکنم اینکه نمیدونم حاملگیش آسان بود و نمیدونم وقتی که رسول الله به دنیا اومد نمیدونم کاخ نمیدونم کسرا پادشاهان ایران به تکوند رو این همه روایتای ضعیفو ولش بکنید. بچاست رسول الله علیه به دروغ نداره. عظیم و بزرگ و بزرگواره نیاز به حادیث دروغی نداره تنها روایتی که در بلادت رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابته اینه که وقتی که به دنیا اومدن نوری از اونجا شعاع میگیره که در کاخا و در قلعه های شام یعنی سوریه حال حالای خودمون در اونجا اون نور دیده میشه این تنها روایاتی که در این باب ثابته اما روایت هایی که رسول الله ختنه که به دنیا منن ختنه بودن و بعضی از دیگر عبدالمطلب عبدالمطلب ختنش میکنه این همه های ضعیفه که نیاز بررسی نداره حالا بعد از این بعد از این ولادت چی میشه و چه خواهد شد ان شاء الله برای هفته های آینده واخر دعوانا لله رب العالمین و صل الله علی محمد و علی آل محمد